عزب الله من الشیطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله على آله و ومن وله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات خداوند برحمینیم تایش پاس و امیدواریم که خداوند توفیقاتش را بر ما مستدام بدارد و توفیق شکر نعمتهاش را هم توفیق شکر توفیقاتش را هم یر ما بگرداند تا سبب دوام توفیقات و نیمت ها و عآیت های خداوندی باشد. و همچنین خداوند و سپاس میگیم از اینکه در چنین شب مبارکی، چنین سعادتی نصیب همه ما و شما شد که در چنین جمع باصفا و با خدا و در خانه خدا در این روستای مبارک سایه توریان حضور به هم برسانیم و این جلسه جلسه گفت و شنود ایمانی باشد و به توفیق خداوند نه تنها این جلسه ما را برای استقبال از ماه قرآن ماه مبارک رمضان آماده بکند بلکه ما را برای زندگی خوب زندگی قرآنی در دنیا و ثمره زندگی قرآنی در اخرا آماده بخوند الله تعالی بزرگان و سروران گرامی همه میدونید می دونید که سعادت و خوشبختی و رستگاری همه انسان منوط به پیروی از تعالیم و فرمایشات الهی و نبوی و آخر این امت اصلاح نخواهد شد مگر با همون چیزی که اول این امت اصلاح شد قبل از اینکه صحبتی که خداوند بنده ی حقیر توفیق نایت بفرماین برای سرورانم ایراد بکنم این جلسه خیلی جلسه مبارکیه که مردم با علماء در خانه خدا برای رونه و قرقی و پیش برد تعالیم خدا در جامعه امشب دور هم جمع شدند. حضور علماء در جلسه حضور خداست و حضور رسول خداست صلی الله علیه وسلم چون علماء تنها وارثان پیامبر خدا صلی اللہ علیه و سلم استن و علما سیم و ذر و علما جز علم چیزی دیگه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ارث نبردن اینجاست که علما میگن اگر مردمی حرف رو به زمین بزنن صد درصد به زمین میخورن اگر مردمی حرف علماشونو به زمین بزنن به زمین میخورند. چون که علماء از جانب خدا و رسول خدا صحبت میکنن یا قرآن یا سنته پس سعی بکنیم که بیشتر به عمل بها بدیم امروز مسلمانان نیاز به کسی که براشون صحبت بکنه ندارن امروز مسلمان و جوامع اسلامی و انسانی نیاز به انسان‌هایی دارن که براشون کار بکنن صحبت های زیادی شده و شنیدیم و در هر جلسه می شنویم تمامی صحبت‌ها احساس می‌کنیم که تکراریه از بس که جلسه ها تکرار میشه پس صحبت های تکراری رو به عنوان یادآوری و تذکر به ما باید آستین برای خدمت بالا بزنیم در این جلسه امشب علاوه بر علمای بزرگواری که با حضورشون سبب رونقی این مجلس شدن و سبب دلگرمی شما برادران بزرگوار و خواهران بزرگواری که در جایگاهی دیگه حضور دارن در کنار همین مسجد سبب دلگرمی شما شده و اینطور باید باشد که همیشه علما در جمع مردم باشند مردم رو رها نکنن اگر دوست دارن که مردم اونها رو رها نکنن همچنین در این جمع مهمانان گرامی هستند که و بزرگوار که از بندر عباس تشریف آوردند و با هم آمدیم معرفی بکنم جناب آقای دکتر زندی معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی هرمزگان و همچنین اخوی ایشان که از تهران تشریف آوردند و همچنین دکتر روستا رئیس بهزیستی جزایر خش و دکتر شفیعی که کارشناس ارشاد بهزیستی هستند و دیگر دوستان ایشون هم از قیل وقت است که میگن یه جلسه ای باشه در جزیره خش با هم بریم درباره اعتیاد درباره راهکارهایی که برای ترک و پیشگیری هست به نشستی داشته باشیم با علمای بزرگوار جزیرهی قشم ایشون امشب توفیق حضور در این جلسه ایمانی و خدایی و قرآنی هم میسیبشون شد و با هم آمدیم ان شاء الله از صحبت‌های با ارزش هم استفاده خواهیم برد این مراسم برای قرآن برگزار شده اصلا کل این زمین آسمان برای قرآن برگزار شده و تمامی بندگان خدا برای اینکه دستور و نظام خدا که قرآن باشد در زمین و زمان پیاده بکنن و به عزت برسن ما نیاز داریم که چنین جلسه هایی بیشتر تکرار بشه تا جوانای ما نونه حالای ما با قرآن و فرهنگ قرآن و معارف قرآنی بیشتر آشنا بشن هر چند فاصله ها بین بندگان خدا بین مسلمان و قرآن و اسلام کوتاهتر بشه و موانع برداشته بشه و بیشتر این معارف قرآنی و برنامه های قرآنی به اونها معرفی بشه و حضور گسترده علما هم در جمعشون شکل بگیره به زندگی اونها شکل خاصی میده ما همه میدونیم که خبر از ترقی و تعالی و تمدن و پیشرفت نیست مگر با قرآن زیستن ما باید بچه هامونو از تولدشون یا قبل از تکفین نطفشون بر اساس برنامه های خدایی دریابیم اگر همونطوری که جناب استاد شیخ محمد علی امینی حفظه الله فرمودن که ما نیازه به یک جامعه قرآنی داریم این جامعه قرآنی باید قبل از تکفینه تکمین نطفه شکل بگیره نطفه باید قرآنی باشه نطفه باید ایمانی باشه نطفه باید پاک باشه از بدر تولد, تولد و قبل از تولد و قبل از انتخاب همسر قبل از ازدواج باید انگیزه خدایی و قرآنی باشه که از همین نطفه های قرآنی مردان و زنان قرآنی دختران و پسران قرآنی به دنیا بیان تا جامعه ما جامعه قرآنی باشه جامعه متحرک و زنده بر اساس دین و ایمان و عقیده باشه مامی موزلات و مشکلاتی که در هر زمینی امروز جامعه انسانی داره همش برمیگرده به دوری انسانها و فاصله زیاد انسانها از تعالیم خداوندی و فرامین خداوندی و امروز امت اسلام که زجر این همه زلت و بدبختی و خاری داره میکشه همش به خاطر این که تمامی وقتش صرف درست تلفظ کردن الفاظ خورغن داره میکنه. همه ما داریم تلاش میکنیم که حافظ الفاظ باشیم اگر همین اندازه که برای تحسین صعود همین اندازه که برای تحسین لفظ قرآن تلاش میکنیم برای تحسین عمل به قرآن برای تقویت احکام قرآن حافظ احکام قرآن باشیم و بچه ها ما را تشریق بکنیم جامعه ما دارای تحولات عظیمی خواهد شد ما میگیم هر حرفی تلفظش ده تا داره به بچه هامون بگیم که پیاده کردن حکمش چقدر فضیلت داره و چه عزتی و چه آبرویی و چه مناعتی و چه تعالی و ترقی به شما میده جامعه صدر اسلام نه اینکه خوب قرآن تلاوت میکردن برنده شدن بشنوید عبدالله ابن مسعود که از بزرگان یاران پیامبر صلی اللہ وسلم که می ما ده آیه از قرآن و انتخاب می کردیم جامعه مدنی و صدر اسلام جامعه عملی بوده نه جامعه قولی بوده جامعه گفتاری نبوده اصلا امت اسلام و تمدن اسلامی شکل نمیگیره بر گفتار تمدن اسلامی و عظمتی که صدر اسلام بوده و اون تحولاتی که در دنیا به وجود آورده تمدن اسلامی زمانی بوده که عبدالله ابن مسعود می میگه که ما ده آیه میگرفتیم از پیامبر خدا صدرالی سلم و از این ده آیه تجاوز نمیکردیم تا این که هم تلفظش و هم تجوید و تحسین لفظش و هم حلال و حرامش و هم ناسخ و منسوخش و هم علت و اسباب نزولش و هم محل نزولش همه مسائلی که در این ده تا آیه بود یاد می گرفتیم و بعد از این ده آیه تجاوز میکردید به ده آیه دیگه در صورتی که هم تلفظ و تلاوتش بلد میشدیم و میگرفتیم و هم عمل به اون دهتر رو یاد میگرفتیم. امروز ما به شکلیات و ظواهر و پوسته بیشتر اهتمام و ارزش میدیم تا به بواطن جامعه اسلامی امروز نیاز به روانی قرآن ندارند. روخنی قرآن روح می بخشه، تمدن، ترقی، پیشغفت، اذت سربلندی به هیچ جامعینه نیده درست جنبه تبدی داره. درست نماز درست نمیشه تا این که تو در نماز قرآن بخونید. درست هر حرفش ده تا حسنه است. ما که نمیخوام سبب جمع بکنیم که همش بحث سباب نیست آقا میره حج بر میگرده سواب جمع بکنه سواب یک بود قضیه است خداوند در حج نگفته که بیا سواب جمع کن جای خودش گفته بیا در حج شاهد منافع امت اسلام باش لیش هدو منافع اله ما از مسلمان دعوت می که بیان به زیارت خانه خدا و تواف بکنن و در مکی معظمه اونجا شاهد و گواه و بر منافع مسلمین باشند. این کلمه منافع چند تا منافع در بر گیره یک منافع دینی منافع علمی منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع اجتماعی منافع فرهنگی منافع اخلاقی این نیست که ما بریم تواف بکنیم بعدم بر بگرم فلانه حاجی شد این فرهنگ هج نیست فرهنگ قرآن روخانی قرآن نیست اگر تو امروز عمل به خاصه های قرآن نکنید عمل به فرامیر قرآن و برنامه های قرآن نکنید فردا همین تلفظ قرآن هم ازش محروم خواهید شد باور بکنید که اگر هدف پیاده کردن قرآن نباشه یک روزی میرسه که نمیتونیم همین حروفش هم تلفظ بکنید چرا جوامه اسلامی از بی میره اگر جهاد که یکی از فرامیر قرآنه و در قرآن سوره هایی داریم سوره انفال همه صحبت از جهاده جهادی که اسلام نگه می داره امر به معروف و نهی از منکر دوتا تا از برنامه‌های عظیم اسلامی است پایه‌های عظیم اسلامی است که به دولت اسلام بقا میده عزت میده، توان میده در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر نباشه دو تا پایه اساسی قرآن اینجا مختله پس جامعه قرآنی نمیتونه وجود داشته باشه كنتم خير امه اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ممکن نیست که تو ایمان به خدا داشته باشی و ایمان داشته باشی و ایمان و اسلام برای تو بمونه و ارزش های دینی برای تو بمونه در صورتی که امر به معروف و نحی از منکر نباشه در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر بدشون میاد این جامعه نمیتونه قرآنی باشه از بزرگوار و خوهرهای بزرگوار و محترم یکی از فرهنگ اسلام و قرآن جهاده از زمانی که جهاد از فرهنگ اسلام و مسلمان از فرهنگ مسلمان ها برداشته شد دشمن درشون تمه کرده آمده در قلب عالم اسلامی قدرتشو به نمایش میگذاره دشمن میخواد که ما به لفظ قرآن بچستیم نمیخواد که به مغز قرآن پی ببریم بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا بعد از خود آمریکا دولت قطر تعجب میکنیم دولت قطر اسلامی از کی به خودش اجازه داده که بیا تو قطر بزرگترین پایگاه نظامی در دنیا بزنه مگر قطر یک دولت اسلامی نیست از کی اسرائیل به خودش اجازه داده که بیاد اینجا پنجاق سال تری مثل خفاش خون آشامی خون مسلمان ها رو مکه و توهین هم بکنه و از اون طرف هم الان اخبار می گفت که قرار 800 میلیون دلار پرداخت بکنه آمریکا دوباره مجددن بلا عوض برای اسرائیل و سالانه 3 میلیارد دلار آمریکا پرداخت میکنه برای اسرائیل از زمانی که مسلمان ها فقط روخونی قرآن میکنن باور بکنید از زمانی که مسلمان ها روخونی قرآن میکنن و عمل به قرآن و سست و ضعیف و بیرن کردن اینطوری چه؟ به خودشون اجازه میدن که بیان تو ممالک اسلامی اینطوری خودشون رو معرفی بکنن و صاحب اصل رو دیگانه را بخوان چه اونها را آواره بکنن و بیرون بندازن جامعه ما سربلند بلند نمیکنه. مگر با همون چیزی که اول این امت اونها را سربلند کرد یک عودت یک بازگشت یک رجوع صادقانه و خالصانه و خدایی به احکام خدا و دستورات خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم باور بکنید که حتی جامعه اسلامی با کثرت علما هم پیشرفت نمیکنه. یه وقتی کسی فکر نکنه جامعه اسلامی با یک عالم ربانی و حقانی یک عالمی که چه؟ واقعا در جامعه مردم هست و در متن جامعه هست و چیزهایی که میگه خودشم عمل میکنه حالا من باشم اگر چیزی میگم اینجا اول باید خودم عمل بکنم تا این حرفان چه؟ اثر داشته باشه یا هر کدوم از برادای بزرگوار من باشه پس به کثرت نسخه های قرآن که تو هر خونه ده تا نسخه قرآن باشه یک تلویزیون هست یک ویدیو هست تو خونه ها اما تا قرآن هست تو تاکچه همون یک تلویزیون و یک بدیو اون 20 رو خونسا کرد ده تا بیس تا قرآن تو تاقشه تو نمیدونم یک پوشش مخصوص گذاشتن تو تاقشه بیس تا قرآن ولی یه تویلیزون بیشتر تو خود با یه ویدیو بگیرو نوکه کدوم یکی موفقه کدوم یکی داره کار میکنه سر قرآن نمیریم اگر بریم آخر شب فقط قرآن رو بگیریم به عنوان تبرک میسی که وقتی اعظم میگه بعضی پیر وقتی میگه اشهد انم و رسول الله از اون طرف هم رشش دو تیغه کرد تو میدون اشهد انم و رسول الله یعنی چی؟ رشش سمیل دو تیغه کرد معنی ندار صحبت ریش نمی کنم کسی به حیث و بایست کسی به این طرف اون طرفش نگاه نکنه من که کسی رو شرمنده بکنم ولی باید ما مسلمان همه دست به دست هم بدیم دشمن رو شرمنده بکنیم دشمن رو زلیل بکنیم دیشب در که من در نگه مراسم بود یه دوستی نشسته بود صحبت از این شد که شب زمستانی شب تولانیه. شب رو یاد ن더라 شب های و روز زمستان داره کوتاه میشه <تصفيق> بعد عزیزی کنار من نشسته بود گفت عمر مسلمانا کوتاه است عمر مسلمانا کوتاه است عمر کوتاه کی گفت عمر کوتاه بگو برکت عمر رو کوتاه کرده بی برکتی در عمر ما عمر ما رو کوتاه کرده وگرنه عمر 40 سال خیلی عمره بعد خوشبختانه خوشبختانه در همون جلسه یک بچه 14 ساله بود یک نوجوان 14 ساله که تو شعبه حفظ بندر کنگ اونجا 26 روز قران حفظ کرده بود پیرمردان تو جلسه بودن بعد اون بچه بلند شد ج... گفتم چند ساله؟ گفتن تو بلند شو عزیزم بیا اینجا گفتم چند ساله گفت 14 سال گفتم چند جز قران حفظی گفت 26 جز چارده سال بیست و شیش جز ما میگیم عمر کتاهه کجا عمر کتاهه برکت از عمر رفته ما به برکت شدیم بعد گفتم که یه نفر دیگه بلند بکنید یکی از دوستان دوباره اشاره کرد به طرف این بچه های کوچه گفتم چرا بچه های کوچه تو میخوای بلند بکنه یکی بلند شده بیست شیش جز قرار نفذه چارده سالشه گفتم یکی دیگه بلند بکنید منظور رو نفهمیدن اینو منظورم چی بود گفتم یکی از پیرمردار رو بلند کنید حالا یه چارده ساله بلند کردین چارده سال از خدا عمر گرفته چند ساله بالغ شده حالا من میگم از هفت سالگی قرآن شروع کرده از هفت سالگی شروع کرد؟ اصلا از دفت سالگی شروع بکنه چارده سال بیست و از بر کرده گفتم یه پیرمردی بلند بکنی فکر میکردم که من قسدن دارم میگم کیالا بلندش بکنی یکی گفتم یه هفتاد ساله بلند بکنی بعد گفتم نه بابا نمیخوام نگاه پیرمردان نکنی نمیخوام که پدر هفتاد ساله رو تو جلسه شرمنده بکنم بعد گفتم بدونی که پیرمردی رو بلند بکنی که هفتاد ساله گفتم هفتاد سال بیشتر عمر یا چارده سال گفتم هفتاد سال گفتم خب پدر هفتا ساله لطف بکنه بگه چند جز قرآن حفظه اگه خیلی زرنگی بکنه تا علم ترکیفه که همیشه تو نماز سرابی میخوندن تا علم ترکیفه بالاتر نمیره. اگه خیلی زرنگی بکنه هفتا سال روب جز چارده سال بیست و جز. اگر این پدر هفتا ساله که هفتا سال خدا بهش عمر داد آمده روب جفت قرون ارس کرده <تصفيق> چند سال از خداون عمر میخواد که 26 جزفت بکنه حد میگه 500 سال درسته؟ پس حد ما میگه 500 سال خدا به این بده شاید بتونه 26 جزفت بکنه باور بکنه اگه هزار سال هم بهش بده سن سال مطرح نیست فقیر و تاجری مطرح نیست سفید و سیاه بودن مطرح نیست سفید بودن اصلا کمال نیست تاجر بودن کمال نیست رئیس و مسئول بودن کمال نیست اینکه فلانی رئیس دولت فلانجاست اینها هیچ کدوم کمال نیستن. مال و ثروت و فلان بازار و فلان بیلدینگ و این هیچ کدوم کمال نیستن کمال همینه ذلك لا ريب فيه خدا للمتقین تقوی کماله و متقین کامله خدا للمتقین همین کتابه هر کسی هدایت شد و خدا توفیق هدایت داد توفیق به کمال رسیدن نصیبه شده و هر کسی سلب توفیق شد اگر هرچند کامل باشه از نظر مادی و دید ظاهر مردم و دید مادوی ندید معنفی باور بکنی کامل نیست میدونی کجا میتونه کامل نیست وقت روحش به حلقومش میرسه میدونه که کامل نیست فرعون کسی بود که سلطنت روی زمین رو داشت و فرمان روایی روی زمین رو داشت فکر میکرد که کامله شیطان گولش داد گفت یک مقامی از مقام تو بالاتر هست اگر میخوای کامل بشید گفت بگو من خدام ولی عزو بله این مسکینم گفت انا رب بکم العل. من خدای برتر شما هستم تو همین گفت به زمین خورد وقتی دوتا پارچ آب رودخانه نیل خورد همین خدای دروغین اون وقت فهمید که خدای موسا کامله و خدای هارون کامله و موسا و هارون کاملا. گفت من تو همون سر اول وقتی دو جرعه آب خورد دروتخانه النیل همون که کسی میگفت من با سلطنتم کاملم کامل ترین منم وقتی دو جرعه آب خورد گفت که نه کامل اونی که در آسمانه و کامل موسا و هارونه حالا منو ببخش گفت دیگه نه اینجا دیگه جاش نیست دیر شده تن آدمی شریف از به جان آدمیت نه همین لباس زیباس نشان آدمیت لباس تو به رخ کسی نکش مال تو به رخ کسی نکش یکی از علما از یه سوال کرد که اگر تشنه شدی برای اینکه یه لیوان آب به دست بیاری چقدر حاضری از مالت بدی میخوای دمیری تشنته اتش گفت حاضرم نصف مالم بدن یه لیوان آب و به من بدن تا خودم از مر نجات بدم تشنگی رو برطرف بکنم بعد آلمهش گفت لیوان آب خوردی نصف مال دادی آب خوردی نتونستی اون آب رو دفت بکنید مذارت میخوام یعنی نتونستی ادرار بکنید تو مسانه گیر کرد 48 فرحه یه تفته نتونستی ادرار بکنی حالا حالت چی میشه گفت که اگر نتونستی دفعش بکنی اون آبی که خوردی چقدر مالت حاضری بدی گفت کل مالم تا دفع بشه یعنی حاضر نصف مال بده یه آب بگیر تا اتش برطرف بکنه حاضره که اگر آبش دفع نشه که باید دفع بشه حاضر کل مالش رو تخلی بکنه از مالش, مالش رو ببخشه تا دفع بشه دنیا داره. اگر این کتاب ارزش نداشته باشه همین کتاب این کتاب در هر زمین و زمانی تازه است در هر زمین و زمانی عالی و مترقی است در هر زمین و زمانی منطقی است واقعی است با فطرت و سرشت انسان واقعیت داره تطابق داره خلاف منطق نمیگه خلاف منطقم نمیپسنده، خلاف واقعیتم صحبت نمیکنه. دشمنان اسلام در جنگهای صلیبی که به کشورهای اسلامی آمدن خون مسلمان رو ریختن فرهنگشون هم غارت کردن بردن اونجا فقط همین برگاه برای ما گذاشتن بین این تمدن رسیدن گرچه از نظر معنویات خیلی عقبن این قرآن هم تمدن دنیایی به انسان میده و هم پیشرفت دنیایی و زندگی خوب دنیا و ازده سربلندی و هم زندگی معنوی و اخرا. چون خدا هم خالق ماده است هم خالق معنا. است همون خدایی که گفته به معنا به همون خدا گفته به ماده هم به پرداز همون خدایی که گفته به عقلت بپرداز همون خدا هم گفته به شکمت بپرداز. پرداز همون خدایی که گفته به آخرت و فرداز گفته ولتنس و نصیب و دنیا اینا فرهنگ قرآنیه هم دنیای آباد هم آخرت آباد هم دنیای با افتخار و سربلند و با عزت و مستغنی و عدم وابستگی مگر به یک ذات به الله سمد هم آخرت با عزت و با آبرو و موفق و خوشبخت من در قطر بودم یکی از نسان تعریف میکرد که معسسه های سلیبی یک زمانی آمدن در آفریقا مسلمان های آفریقای سیاه پوست فقیر بودن میگن که معسسه سلیبی داره حلیب توضیح میکنه شیر شیر شیر داره توضیح میکنه یک سیاه مسلمان رفت که حلیب بگیره شیر بگیره پیش معصصه سلیدی اون مسئولش گفت که ها چه میخوایم گفت آمدم که این شیر رو بگیرم گرست نه هستیم شیر به ما بدید بگه یک سلیدی علم کرده بودن زیر سلیب نوشتن الحلیب تحت سلیب شیر زیر سلیب حلیب تحت سلیب اگر که حلیب میخوای ما شکمت سیر میکنیم تو رو از مرد نجاب میدین اما هرچی تو دلت بعد ما بدین عقیدت باید بدین اول عقیده صلیب رو بپذیر بعد بیا شکمت سیر بکنید از کجا آمده؟ چرا مسلمانان اینقدر زلیل شدن در زمانی که در زمان حارون الرشید یک روزی سر به آسمان خوابیده بود صورت به آسمان خوابیده بود پشتش انداخته بود رو فرش پا انداخته بود رو پا لکه عبری رد شد هارون ارسید یه تبسمی زد نگاه به اون لکه عبر کرد گفت برو ای لکی عبر هر کجا که دلت میخوای رو زمین دبا خراج و مالیاتت میاد به دولت من خراجت میاد در کوچه های شهرها صدا می زنن این فقرا بیاید زکات بگیرید بیایید صدقه بگیرید بیایید پول بگیرید فقیر نبود که بیاد صدقه بگیره امروزه چرا ایمتحاری شده میگه حلیب بده میگه عقیدت بده تو حلیب بده اول عقیده بده تو حلیب بده وقیر نبید برادرای بزرگوار و محترم من خجالت میکشم حقیقتاً همه جا به من میگن صحبت بکن خیلی صحبتم زیاد شده خیلی صحبتم زیاد شده کلماتش از دستم رفته چند کلمه گفتم اینه همه مسئولیت داره هر دای قیامت من کس کلام و حقه لغتو شما وادار میکنی که ما صحبت بکنیم وادار بکنی که عمل بکنیم این همه درخواست صحبت صحبت ندید همونطوری که اون عرابی گفت به عمر رضی الله عنه عمر گفت که اگر عمر کج رفت شما چه کار میکنید؟ یکی بلند شد گفت ما میذاریم که عمر کد وادار به عملش میکنیم که بر بگرده نمیذاریم منحرت بشه با سر این شمشیر گفت من درستت میکنم گفت الحمدلله که یک نفر هست که عمر رو وادار به عمل بکنه علما مردم رو وادار به عمل بکنن و مردم علما رو بادار به عمل بکنن تا جامعه عمل داشته باشیم صحبت هامون شکل عمل به خودش بگیره اگر میخوایم که خوشبخت بشیم چون جهت معکوسش و جهت ضد عمل کردن به ها عمل کردن و بادار کردن جامعه ما به بدی ها داره فعالیت میکنه اگر ما علما که در جمع اینجا حاضر هستن و شما مردم خوب خواهر و برادر همه دست به دست هم ندین که همدیگر و بادار به خوبی نکنین باور میکنی ادیه هستن که دارن جوانای ما و بادار به بدی میکنن شراب و تقدیم میکنن تو یک بار بنوش تو رو دریا کارته باید به این موج تیره بزنی سوار گلف بشی خسته کننده است اعصابت خرد میشه یه دور تریاق بنداز بالا میری تا خسته برمیگردی نشیتی قدرتمندی خسته هم نمیشی یک جوان 15 ساله تو یکی از رسته ها من رفتم گفت فلانی یه جوونی هست دو ماه در گوش من فقط میخونه روزه میخونه در گوش من تو یک بار شراب بخور به جرعت میده تو رو سبک میکنه هر روز میگه در گوش من تبلیغ میکنه برای بدی آخر یه روزی به جایی که در گوشش تبلیغش بکنه سر شیشه رو تو حلقمش باز میکنه دیگران دارن مواد پخش میکنن. دیگران دارن آلودگی رو پرش میکنن. دیگران دارن مراسم مبتدل رو در اختیار بچه های ما می دذارن. سرمایه گذاری لازمه اگر مردم من یه چیز بگم اصلا خدا نکنه یک آلیمی مشکل مالی داشته باشه خدا نکنه یک آلیمی مشکل مالی داشته باشه دو هفته است که فلانی نیست تو مسجد مشکل پیدا کرده بچهش مریض شده خرج دکترش زیاد شده رفته کار بکنه یا اگر گید که بله فلانی مثلا نمیاد که چه این کار علمی یا میکرد بدرها کرده یه تاکسی گرفته داره کار میکنه میگه عالم جاش تو مسجده نکره این کشی. عجیب این تاجر انتظار داره از این عالم که سنگر رو خالی نکنه همیشه باشه تو این سنگر کار رو دینه از گشنگی ببین تو که اینطوری وزیفه عالم تشخیص دادی من نمیدونم چرا وزیفه خودت تشخیص نمیدین قدرت فکر و علم و قدرت مال این دوتا وقتی کنار هم بشینه فکر علماء مال تاجران مسلمان برای این جلسه اینا چیه؟ اگر من تو سعودی بودم برای مسابقات حفظ قرآن هفتاد هزار درهم جایزه اولش بود هفتاد هزار ریاض شاید بعضی بگن اینجا جزره قشم ما پول نداریم درسته یه نفل پول نداره ولی وقتی کنار هم باشیم پیدا میشه یه نفر فکرش ارائه بده یه نفر تر اراده بده یه نفر ماشینش در اختیار بگذاره یه نفر پولش در اختیار بذاره اگر یه تاجر مسلمانی تو این جزیله بلند بشه آقا من کلیه خرج این مراسم خودم تقبل میکنم باور بکنی مطالعه ما کمتر بودن مطالعه ما کمتر بودن سیگارهای ما کمتر بودن منحرف های ما کمتر بودن جوان محضوره چهار تا مشکل داره جوان یک مشکل فکری دو مشکل روانی و روحی سه مشکل جسمی چهار مشکل جنسی مشکل فکری مشکل روحی مشکل جسمی مشکل جنسی هر چارتا مشکلشون این قرآن حل میکنه. به شرطی که همه دست به دست هم به شرطی که علما علمای قرآنی و ربانی باشن در وحلی اول به شرطی که حکام و مسئولین حکام ربانی و قرآنی باشن از خدا بفرسن به شرطی که تجار و سرمایدارا تجار قرآنی باشن از قرآن و سنت الگو بگیرن سه تا عامل تربیت هست یک پدر و مادر دو معلم سه دوست و رفیق و هم نشین ستا علما میگن سه تا عامل برای تربیت نسل آینده هست اگر این سطح عامل تحقق پیدا بکنه نسل آینده نسل سعادتمندی خواهد شد و نسل سالم و آبرومند و مترقی خواهد شد یک عامل اول پدر و مادر اگر پدرها و مادرها در مکتب قرآن و سنت تربیت قبل از ازدواج علما رو تقواشون کار کرده باشند. یا در یک جو ایمانی و در یک جو قرآنی رشد کرده باشند. همین بچهایی که امروز 15 سال تو این جلسه ها شرکت بیدید بذار بیان سرود بخونن قرآن بخونن اینها بعد از 20 سال 22 سال وقتی ازدواج میکنن پدر و مادر خوبی خواهند شد آمل اول اگر پدر و مادر قرآنی باشه عامل دوم اگر معلم ها قرآنی و ربانی باشن اگر پدر و مادر خوب معلم خوب و دلسوز و با وجدان و سوم دوست و رفیق و همکلاسی و همگرم و همنشین خوب این ستا وقتی دست به دست هم میده باور بکنی جامعه خوب نسل خوب آینده خوب جوانای خوب خیر زیادی در جوانای قشم هست آقای دکتر میگفت که ماشاءالله اینجا چقدر جوان الحمدلله هست تو قشم بودیم میدید که نزدیکی تا سی تا جوان همه با هم تمیز این گفت تو بندر من ندیدم این همه جوان با هم باشن گفتم الحمدلله داریم به شرطی که علما و مسئولین قنایت بکنن همطور که جناب شیخ گفت جامعه اسلامی زمانی اون جامعه سربلنده و جامعه جامعه خوبی که علما و مسئولین همه انتقاد پذیر باشند انتقاد پذیر برای سازندگی صحبت خیلی زیاده بزرگانم هستند آقای دکترم قرار شده که درباره پیری صحبت بکنن ما در سرود چیز حدود چند ساله که با بهزیستی خصوصا با معاون پیشگیری و ترک معاون پرهنگی و پیشگیری که آقای دکتر باشن نزدیک دو سه ساله داریم کار میکنیم و ترهای بهزیستی ماخن ترهای جالبیه و پیاده کردیم یک طرح همیاران بهزیستی دو طرح پیشگامان سلامت سه تره جوانیاوران با مرکز بهداشت طرح رابطین بهداشتی. این طرحا اگر در جزیره تیاده بشه در آینده نتیجه های مصبت خوبی خواهد داشت حق ماست این طرحا به زیستی باید تیاده بکنه روش سرمایه گذاری کرده ما باید بگیریم ازش اگه نشد به زور بگیریم ما فرهنگ خواستن و باید یاد بگیریم که چی چیز حق ماست و چی چیزو باید بگیریم یه مثال میزنم کارخانه خمیل سیمان درآمدش و نفعش کسی دیگه میبره دودش تو دو چشمه مردم خمیر داره میاد گاز سمیش داره منطقه خمیر بخش خمیر رو کلنچه مصموم داره میکنه اما پولش و نفعش تو اون کسی که داخت تهران نشسته یا اصفهان نشسته داره میداد تبلیز این مردم مسکین خمیر نمیدونن که بابا یک فیلتیلی هست که اگر بذارن رو همین کارخانه فیلتر تولید میکنه اما گاز خونسا میکنه خونسا میکنه فیلتر بذارن دیگه این گاز سمی تو فضا پس نمیشه در کشورهای صنعتی همه از همین فیلترها داخل شهرهای بزرگ کارخانهایی هست که همین گازهای سمید همین دود پشت میکنه توچه و فضای پاک اون جامعه و اون شهر رو آلوده میکنه ولی چه فیلتر گذاشتن با بیدونید که چه حق تونه و میتونید مطالبه بکنید با حق ما از شکایت دارد بکنید به زور بگیرید این فیلتر بگذارید کارخانی سیما که میشه بلند کرد ما خودمون دستمون دور گرفتیم، دستمون بارو هیچ شد شاید فلان مسئول دلش به حال ما نسخته باشه گله کردن کار آدم آجزه عمل کرده پلال مسئول سبب نشه که ما ده کار نداریم ولش کنیم نه این مسئول امروز ساعت فردا نیستی که دیگه میاد ما باید بریم خسته نشیم و حق رو بگیریم یک نمونه شاید تنید خیلیش در طول نکشه در خاتمه ی عوائزم. شبی از شبها بعد از نصف شب های یک و دوی بعد از نصف شب حضرت امیر المومنین امر امن الخطاب ردی الله عنهو از خواب بیدار شدن حاکم مسئول از خواب بیدار شدن خواب شیرین کنار گذاشتن بلند شد آمد بیرون کوچه به کوچه این مدینه داره تفقد میکنه. خودش تنها تنها که شاید مشکلی در کوچه های مدینه باشه دوزدی، غارددری کسی دنبال ناموست مردم باشه راهزنی داخل مدینه که ها رو تفقد کرد کسی رو ندید گفت یه سری بیرون مدینه برم اطراف مدینه خارج از شهر نگاه بکنم اطراف چه خبره وقتی رفت به گوشه مدینه دید که در اون فله خارج از سر یک چراغی، یک شولی نمایانه سری دردید به طرف همون آتشی که روشن بود در اطراف و حواله مدینه وقتی رسید به اونجا که یک زنی نشسته بود دو تا بچه نشسته یک دیگی روی آتش آبی داخله و مقدار سنگی داخل اونه داره به هم میزنه بچه ها گرست چیزی نیست که بخوره مادر اونها را سرگر میکنه که خواب بیفتن و مطالبه و غذا نکنن سال کرد از مادر چرا اینها گریه میکنن گفت چیزی نیست که بخورن گرسنه هستن و این جمله رو گفت عمر خودش خوابیده کیس میکنه خبر نداره که رعیتش چقدر گشنه هستن در کناره و بیخ گوش امر امر به لرزه افتاد تن به آشنایی نداد رضی الله عنه نگفت من عمرم. دوید دوید رفت به طرف انبار بیت المال مسئول بیدار کرد گفت گونه آردی کجاست گذاشت رو کولش اون کسی که همراهش بود گفت امیر المامنین این گوله آردی بده تا رو کولم بذارم تو امیر المامنین هستی تو خلیفه وقت مسلمان هستی بذار من رو کولم بذارم یه نگاهی توندی به اون مسئول بیت المال کرد این جمله رو بهش گفت فردای قیامت گناه عمر رو به کولت میکشی کنم من سبب شدم که اینها گریه بکنم در بیخ گوشم مادر چهار تا که سن تو آب بندازه بچه شو خواب بکنه پردای قیامت تو گناه عمر و بزر عمر رو به کن میکشی ساکت شد دیگه باش صحبت نکرد تا رسیدن اونجا سریع آرد و خمیر کرد چانه گره نان درست کرد پخ دهان بچه ها کرد لخمه خودش گفت حالا بسته اون زن گفت حالا بسته بینشون کن گفت نه همینطور که گریه دیدم میخوام خندهشون رو ببینم من سبب گریه شدم دیگه همطور که گریه دیدم من میخوام خنده رو ببینم وقتی بچه ها رو خنده انداخت میدونه اون پیرزن چه گفت گفت کاش کی تو مادرم به جای عمر خلیفه ما بودی کاش کی امیر المابرین تو بودی نه عمر که خوابیده خبر از ما نداره کاش کی تو بودی و مستشم داخت پایی خودشه خودشه هلگو رو از کجا بگیریم علمای ما باید چطوری باشند مسئولین ما چطوری باشند تا مردم ما چطوری باشند خیانبر صلی اللہ علیہ می فرماین اگر دو سنف در مردم خوب شدن همه مردم خوب میشن یکی علما و یکی عمران و حکام اللہ علما و العمرا العلما و العمرا علما من اگه خوب شدن مردم خوب میشن، و عمرا و حکاب امته من اگه خوب شدن مردم خوب میشن. خداوند علما و عمرا و مسئولین ما را همه به راه راست داید بفرما. خدایاب بزرگ که ما را به راه راست داید لفرمه یا زن و مردم ما را به راه راست داید خدایا خواهر و برادر ما را به راه راست هدایت بفرما. خدایا دختر و پسر ما را به راه راست هدایت بفرما. خدایا همه ما را سعادتمند دنیا و آخرت قرار بده. پروردگارا انواع هدایت ها را نصیب ما بگردان. پروردگارا انواع دلالتها ها را از ما دور بگردان. پروردگارا حسن الخاتمه در تمامی امور نصیب ما بگردان. پروردگار را زندگی آبرومندانه در زیر سایه عدل خودت در زیر سایه تعالیم دینی خودت پروردگار را آبرومندانه نصیب ما بگردان پروردگارا را دین و دنیا و آخرت ما را آباد بگردان پروردگارا را و شیطانی را از ما و بچه های ما و علما و مسئولین ما دور بگردان بربردیگار را سعه صدر را نصیب علما و مسئولین بگردان بربردیگار را علما و حکام ما را مسئولینی و علما و انسانهای وارسته و کامل و انتقاد پذیر بگردان بربردیگار را جامعه ما را جامعه قرآنی بگردان بربردیگار را دختر و پسر ما را مردان و زنان قرآنی بگردان بربردیگار را شر مسکرات و مخدرات و دود و مشروبات الکلی و انواع منکرات اخلاق را به برکت این جلسه قرآنی و این جمع ایمانی و این شب مبارک و این ماه مبارک مقدمه ماه مبارک رمضان پروردگار را سربلند و با عزت بگردان پروردگار را دنیا و آخرت اقبای ما را به خیر خاطر بگردان پروردگار غرور نفس را در ما خرد و نابود بگردان و خلیل عش را در ما زنده و احیا بگردان تا چون خلیل ابراهیم پا در آتش بنهیم و آن را گلستان بیابیم از این که سرتون به درد آوردم حوصله کردید ما را در جمع خودتون پذیرفتید نهایت تشکر دارم موفق و معید و سربلند باشید به با امید دیدار آینده و آخر و دعوان الحمدلله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاتون